بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سو من حديثك هذا مخاهيم درجت حديثي ستة أزأت خبرا وياتمي كنا وليس ستة أزأت خبرا حدث شن داشتا هي حين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي هريره وعائشه رضي الله عنهما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار خب اولا اولی مسئله که ما در اینجا داریم کتابی که ما شناختهیم عمدت الاحکام شرط این کتاب این بوده که احادیث در بخاری مسلم باشه لیکن یکی از انتقادهایی که گرفته شده بر این کتاب در این حدیثه حالا چه انتقادی هست؟ انتقاد چینی که حدیث عبدالله ابن ابن العاز و ابی هریره در بخاری مسلم داریم لیکن حدیث عایشه از افراد مسلم فقط در صحیح مسلم لیکن در صحیح بخاری نیست حدیث ویلون العقاب در صحیح بخاری نیست خب میریم به مسئله دومین یا به مسئله دومی دو مسئله و اونم این که سبب ورود حدیث چیه لفظ کامل حدیث عبدالله بن عمر اللفظ هم حديث أبو هريرة عمشيني العايش لفظ حديث عبد الله بن عمشيني مك تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة تخلف عنا أو تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها إذا بيك سفري رسول الله متأخيد كذا يعني بنابضه ما بديرو مدا فأدركنا وقد قد ارهقنا العصر میگه به ما رسید و ما عجله داشتیم برای وقت نماز عصر در سفر بودن رسول الله دیر اومده مده حالا در پاچه شدن با عجله و شتاب شتابان خاصن وضوشون رو بگیرن میگه فجعلنا تمضوا ونمسح على رجلنا میگه سری سری ومدين وضو گرفتین و فقط دست می‌کشیدین فقط دست می‌کشید دست رقیق به انقطه مثلی اعضای وضو میگه فنه ادب اعلى صوته با صدای بلند صدا داد ویل للعقابه من النار مرتين او ثلاثه بار یا سه بار این لفظ رو تکرار کرد گفتن ویل من نار وای بر کشت فاها از جهنم وای بر کشت فاها از جهنم وای بر پشت فاها از جهنم حالا ما میام در تفکیه این حادیث لفظش معانیش نمی خواهد اومده این حدیث رو ما داشتیم فقط یه چیزهایی علاقه ما لم تشکردیم در این حدیث از طباید این حدیثه که در حدیث فقی الله حالا نمیدونم علام بگم یا بدونم برای فواهی در حدیثتن آخر حالا فکر کنم انان گفته بشه بسته بهتره از فواهی این سبب ذکر این حدیث که شد این چینینه که جایز جاهای ازاست داشت برای علمی برای آموختن بلند بکنه داد بکشه سر سلبش داد بکشه شما چرا این کارو میکنید فیلان جای یادن عصبانی بشه توبیخ بکنه ده به احنا صد همه بانوانت صحایه بانوان طلبش است یک فایده اولش فایده دو با اینه که یک حدیث میشه دوبار تکرارش کرد هم خود حدیث و هم خود کلام گفته یک گفته ای دوبار تکرارش کرد در این حدیث دوبار یا بار گفتن ویلون العقاب بن النار خود این حدیث در چند واقع تکرار شده یک واقعی عایشه شنیده یک واقعی عبدالله بن عامد. اسباب ورود حدیث متعدده یک حدی در چند جا تکرار شد پس فایده دوم یک حدیث میشه در چند جا تکرار بشه فایده سومش یک لغت میشه در یک در چند بار تکرارش کرد تا اینکه طلبه و دانش آموز خوب بفهمه یک گفته را چند بار تکرار بکنیم تا اینکه دانش آموز خوب بفهمه در اونجا حدیث بخاطر برای واقع متعدد در مناسبات متعدد تکرار بشه برای اینکه هایی که ن و گفت تکرار بشه به خاطر در همون به خاطر گفته این اون گفته مهم هست اون گفته تکرار بشه تا در ذهن جا بیفته مسئله مهمی هست که طلبه با بیرون در شموذ باید بیرون اون گفته رو ما تکرار بکنیم ما به فواید تربیتی هست در این حدیث ما با ما چطور باشیم ما با دوستان ما چطور باشیم با طلبه ها مندر شموذمون چطور باشیم. خب الله فقه این حدیث مسؤالی که در این حدیث از فقهش نهفتاستم فاها دیمت الله فقهشو میزاریم این فوات عامش بود فقهشو میزاریم در دنباله بحث حدیث ابو هر رجلین داریم که در سبب حدیث مده میگه انه نبیی صلی الله علیه و سلم رأ رجلا رأ رجلا در اونجا اشخاصی را دیدن در اونجا ایک شخص را دیدن رأ رجلا لم يغفل عقیبه او عقیبه بله که دیدن یک مردی پشت پاشو نشسته،, نشسته فرمودن ویل للعقاب من الاروای بر پشت شوقاها ها چی؟ از آتش میریم حضور آتش جهنم حالا خب، الان میم میکنیم این عبارت و این حدیث نبوی اولا کلمه ویل از مصدر جوز مصدر مسادری که فعل نداره، بحثش فعلی مشخص نیست. مثلش ویه و ویب، هم معنای وایه، وای خودمون. و هنگامی که به صورت منصوب میاد، منصوبش بر حسب مستریشه مثل الزمه الله ویلن ویا ویل الله یا ویلن علیه و ویلن من ویل قدش در ذات خودش کلمه در معنای لغویش به معنای عذاب میاد به معنای غم و اندوه میاد به معنای حلاق به معنای عذاب یا خمسه در لغت به معنای عذاب حزن و اندو یا غم و اندو و معنی حلا امام قاضی اعیان تا قول در, در معنای ویل ذکر می اولین قول که به کسی ویل گفتی میشه یا وای بر اون که در حالی افتاده باشه یک کاری کرده که به اون حلال بشه. یک قومی فاحشه زنان رو انجام میدن. وای بر اون قوم که مثل قوم لوت و مثل قوم فلان نابود بشه. یک قومی که ذکاتشون نبوده. وای بر اون قوم از حلال خدا یا برای شخصی دوم برای شخصی که مستحق عقوبت، اون خالق اول حلال برش حتمیه که حلال شد اگر در این دنیا نشود که در آخرت دیگه بای براموند. قسمت دوم کسی که مستحق داشته. گفته ای سوم خود حناک. خود حناک بهش میگن به. حلاک برسه این. حلاک که اینچین کار این انجام بده. گفته چهارم این که سختی عذابه. سختی عذاب. سختی عذاب. سختی که سببش عذابه. اون شخص بار. گفته یه پنجمی که نفت کرده، غم و اندوه و شیشم طلا زعیفه بر حسب حدیث زعیفی که گفته شده، یک سرزمینی در جهنم، ویل سرزمینی در جهنم که ضعیفه همامه بغیر یه خلافش چی میگه؟ میگه ویل برای یک فاجعه میاد، یک امر فاجعه، یک امر زننده و یک امری که نباید بشه یعنی یک چیزی که صدای انسان را بالا بیاره یک چیزی که یک فاجعه بزرگی حالا اون چیزی که ما در لفظ خودمون داریم کلمه ای ویله که به معنای وای حالا چیزی که به صلاح داراجمونم یعنی وای بر کسانی که این این کار را انجام بدم یعنی حتمی عذاب برای یعنی اینها از عذاب, عذاب خداوند هلاك خداوند به دور نیستن خب میام به قسمت دوم این کلمه ویل داریم قسمت دوم اعقاب داری ویل عاقاب. اعقاب در از به عقب گفته میشه که عقب گرفته شده پس پشت در اینجا به مقصد پشت دو تا دوتا پایین دو دوتا پوزک پشت پا. این بهش میگن عقب عقب هر چیزی آخرش مثلا بگیم عقب رو با. چیه؟ چیه؟ دومش در یک روایت داریم ویلون لل عراقيب، عراقيب، عراقیب عراقیب عراقیب جمع عرقوب جمع عرقوب عرقوب یعنی چی عرقوب همون تاندوم فارسی تاندوم اون رگی که این مچ پا را اون رگ اون رگ یا اون تاندومی که مچ پا را پایین و عقب میبره بالا پایین میبره دست بگیرید پشت پاهاتون یک رگ های نرج خونی فرگ های عصبی که باها را بل بلا پایی میبر بل این بهش میگن عرقوب عرقوب غلیزه و محکمه بین استخون و عزولات یعنی ما بین مثل استخون صفته که حرکت نمی و نه مثل نرم. نرمه خب اینم عرقوب چرا در اینجا رسول الله سآل یا پیش میاد؟ چرا رسول الله صدا دادن؟ چرا رسول الله صدا دادن وای بر پشت پاها؟ احتمال داره غیر پشت فاهم علیکم السلام. احتمال داره غیر پشت فاهم شسته نشید. دستش آرنجش هم شسته نشید. چرا رسول الله گفتن؟ اعطاب چرا پشت فاها رازه کردن؟ ذکر پشتفاه ها خاطر اینه که تصاحل و کتاهایی بیشتر در پشتفاه هاست. دستار آلا معمولاً دستش می دسته زیر دوچ می گیره یا زیر شیر آب می درست می ولی پاها معمولاً دقت نمیشه کسان هایی که می گیستن بوزو می گیرن و این مسائل دقت نمیکنن به خاطر عدم دقت در شستن پاها رسولان تذکرشون بر پشتفاه پاها بوده. خصوصا اینکه در درست معمولا پیراهنه و آس... بلنده، وزوی که گرفتیم، آستین رو گریم پایین دیگه مشخص نمیشه که شسته کی نشسته. دیگه پشت پاها نه. خصوصا اصحابی که لباساشون نسبه ساق بوده. پشت پاشون دیگه مشخصه. نشستی، خیس نشد، سفیدرنگ باقی میبونه. خسیزا هوایی که خشکه در مدینه هوا هم خشکه اگر اون قسمش شسته نشه سفید باقی میمونه خب از جبل فواید این حدیث که ما داریم چینینه که اگر یادتون هست کمی پیش ما گفتیم در حدیث عبدالله بن عمر که رسول الله صلی علیه و سلام الله صلی علیه و سلام دیدن که پشت پاهاشون شسته نشده رسول الله دیدن که چی؟ پشت پاهاشون شسته نشده چرا میگه چون فجعلن نتوضا و نمسحه الارجونه میگه ما اومدیم وضو میگرفتیم و بر پاهامون مرد میکردیم درسته مرد میکردیم فایده خیلی لطیفی در این حدیثی که اگر شخصی دستش رو گرفت خیس کرد این دست خیص را به پاش مالید این مالیدن به درد نمیخوره این مالیدن تنها به درد نمی پورد. چی باید باشه همراهش باید همراه شستن باشه پس ما در این حدیثی برداشت می که اعضای بزو با لبزی که در قرآن اومده تغسل و تا آخر غسل بشه شسته بشه نه گفت بکنید گفت که بشورید علمو اختلاف دارن در این, که در این که آیا شستن تنها کافیه یا اینکه که هم لازمه شه یا اینکه باید هر دوتا با هم باشه بخاطر همینی که امام بخاری در روی این حدیث میگه باب غسل الرجلين ولا يصح على القدمه, با غسل الرجلين على القدمه. مسكرد. باب غسل رجله ولا يصح على القدمين مسح مسح کردن روی پا کافی نیست باب شستن پاها و مسکردن کردن روی پاها کافی نیست این دلالت حدیثه تركه حدیثا لا امام بخاری چین میاره میگه که بابو درجوي ديجا بعدين حديث مولى يقول بابو غسل الغسل الأعفار بابو شو وكان ابن سيرين يغسل ووضع الخاتم إذا توضأ ثم ذكر الحديث آخر شفناه حديث الزكية مولى يقول ابن سيرين وقت كي بوزوم يجربه عن أنغوش بس اللي كان عنوش يعني عنوش طريقة این انگوشترشم بسیدی جا با جا می کردم مثل یک تنگوده این انگوشتر روی دستش آب نبیرسه پایینش حالا ما این فایده, فایده ی داره، فایده یک فایده ی جالبی داریم در این خلیفانم اینه که در این اثر اینه که شستن تمامی اعضا به طور کاملش اون اعضایی که خدا در قرآن رو در وضوع واجبه اگر یک دیگه ترک اگر یک دیگ دیگه نمازمون. اون طاعتی که با اون بودو میخوام انجام بدیم درست نمازمون بازیم. اگر یک تیک از چون دیگه وجود نداریم. شرط تهارات چیه؟ تمامی اعضای بودو. اونطور که خداوند در ما خاص انجام بدیم. خب. پس این فایده جالبی از ایمان و دیدگیری که ایمان بخاریتش نکنی میکنه. خب. الان اختلاف در این حدیث چیه اینه که الان این واقعه و این وای و این تهدید به عذاب خاص اون اشخاص یا مسئله عامه برای هر کسی که اونجوری کار انجام داد یعنی ویل للاعقاب الف اینجا برای عهد برای اون قدمها و اون پاهایی که رسول الله می‌دیدند یا اینکه نه عامه برای هر پایی صحیح اینه که این علف برای جنس پاهات نه برای خاص پاهایی که می برای جنسی جنس پایی که درست شسته نبیشت پایی که قسمت شسته بشه قسمت شسته نشه و در رسول فقه رو چی؟ العباس و بعموم الله لا بخصوص السبب عبرت عموم الله رسول الله نه به خاطر سبب خاصی که اون مسئله درش بیان شده گفت به عامش رسول الله وقتی که می بر پشت پاها بیگه مقصد خود اونها نیستن هر کسی که پشت پاهاشون شده تو چرا اونها فقط الان اختلاف عالمان در سرسن پاها اجماع اهل سنت چی که پاها باید شسته بشه و مرد کافی نیست این اجمع حالی سومته پاها باید شسته بشه حالا یک شخصی مرد نکرد باش لب دریاز میدرده پیرهانش کسیس بشه آب نمیتونه برداری رو پاش بریزه پاشو هایی دیره میدنه توی آب بیرون میاد یا لب دریاز به جایی کلا آب بردارم اینجوری دستشو میکن زیر آب بیرون میاد گوزه این شخص درست یا نه درست چرا چون خداوند گفتند این رو و کسی که دستشو توی آب برده شسته باز کفته در نزش. حالا چیزی که در گفتند حالا شیه بگیم رافضه بگیم مرد واجبه در نظر سنت مرد واجب نیست اجماع بر دست شستن در نظر شیه مرد واجبه شستن اصلا حرامه کسی پاشو بشگوره وزوش باطله نمیدنم برای چه اصاسی صدیتی حالا کسی که شسته دیگه مردش کرده دیگه خود به خود دیگه بکلان نمی نمیدنیم مثل حنفی کسی که تب باباش در نمارد بالا بیاره نمازش باطل. سبب باشه صبحت با کولو وردی، خانه کی بالا بیاره نمازش باطل شده. الله این نمیدونه ما از ممیزین مثل شخصی که کشک برداشت. چیزی که الا نمیشه روی هم قیاس گرفت. بخاطر شین و تاش بیام حالا به هم قیاس دیگه این مثل اینه. هیچ وقت چنین عملی نمیشه. کش چیزی هر چیز بیا تشخیصی مذهب ظاهری مذهب ظاهریه که ما هم جاهایی میبینیم از عالم های عرض رمون، ها به این مذهب گرایش دارن، خوصاً تکدیر آجام، میگن که باید هم شسته بشه، هم مست بشه. امام جبایی از مرات از میگه که انسان مخیره، میتونه مست بکنه میتونه بشه، فرق نداره. لیکن گفتیم اجماع اهل سنت بر اینی که باید پاها شسته بشید پاها شسته بشید و باید تمامی اعضای وضوع شسته بشه خب الان یک مسئله ای هست و اونم این که رسول الله می فرمان ویل من النار»، الان ویل بر صاحبین اعقاب، اصحاب اعقاب یا همون عقب خودش، پشت پا خودش وای بر اشخاصی که پشت پاهایشون نشدن یا بر... وای بر پشت پاشون خودش شخص عذاب ببینه، حلات بشه یا پاش حلات بشه جزئیات. بود خب الله می کنم اطفال کعبه نه. ایا شعر غیر از پههاش عذاب می‌بینه یا در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرمایند الذي يشرب الذي يشرب في آنية الذهب والفضة الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه انما يجرجر في بطنه يوم القيامة نار میگه مثل که داره در روز قیامت آتشی را میبرد نه که یعنی منظور که مشاهده اینش کسی که در ظرف حلا بنوشه آبی بخوره این در روز قیامت آتشی بخوردش میدن عذابش از جنس عملشه این چیز یک از چیزهایی که هست عذاب،, عذاب شخص از جنس عملش این شخص به طور کلی در آتش انداخته نشد تو چطوره؟ تو بخشه اینکه با خاطر اون فعلش عذاب به همون طریقی که فعلش انجام داده همون طورم تو بخوشه. مثلا در قرآن داریم: اللذی ان اللذین يأكلون أموال اليتامى ظلمة، إنما يأكلون في بطون بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا. هایی که اموال ها, ها رو می چیکار میکنن آتشی را شکه به خود میریزنن اون چیزی که میکنن آتشش که در روز قیامت به جای اون مال یتیم آتش خواهند خورد آتش به خوردشون داده میشه پس گفتی اول چی نینی که گفته ای اول چی نینی که عذاب عذاب دار پشت پاس نه خودش است به طور کامل گفتش قبیح گفتش هست یا نه قبیح خب در جهانم الان گناه دستش چیه؟ پاشو نشوشته، دستش چرا عذاب بکشه مشکل از پاسو پاشو که یعنی چرا دستش توبیغ باشه، چرا چشماش توبیغ بشه آیا کلش توبیغ میشه؟ یا توبیغ شن؟ روی محدد از عذا حالا این میشه این قواهج الجزا من آیا میشه اینجا تثیر داد؟ داریم ابو طالب کم ترین عذاب جهنم یاد ابو طالب داره کتاب موچ پاشت تو جهنم یا حبوبه سرش بجوش میاد لیکن قسمتی معینی از جسمش عذاب میکشه یا بحث همین کسانی که توی ظرف طلا می پرن. یا زنانی که زنا می کنن با هاشون آویزونن یا کسانی که غیبت و ضروب با زبانشون آویزونن عذاب عذاب الان این عذاب و این شر کاملا واقع میشه یه ای این ویل و وای بر پشت یا بر خود شخص صاحب پشت فاست عذاب دیگه بدن انزه اون رو هر کاری سر مدرد خوب اون میگه کار حالا چطور جنبالی که خود اون عذاب اون چیزی که اتلاف اون چیزی و پشت پا پشت راستون اتلاف دادم حالا در بحث خود ها ما اسباب و مسبب و رو داریم. مثلا یک زبون اعضا ازش شکایت میکنن هم دوستمون گفتن چرا چون سبب شده یک شخص در غم و بیفته درسته یا مالی را به حرام بگیره که همه اعضا در اثر اون مار حرام تخضیه بشن یا بدن کامل شخص به در بیاد یک شخصی به دار آویخته بشن خب پس همه اون خاطر اون زمان همه اعضا یک شخصی مثلا زیر سعار رفت پس باید همونطور که این زبانش همون جور بوتی اجزا همون چهره ها توبیه حالا ما یه چیزی رو میبینیم یک توبیخی برمیگرده به جنس همون عمل یک توبیخی مثل کسی که مال یتیم میخوره در روز قیامت سزاش جنس تمامش عملش یا کسی که در ذهن میشه که از ساخته شده یا نخوره لیکن اگر خود این سبب تأثیرات خارجی داشت. مثل همون زبون مثل این حفظ پشت پا نشستی. نماز فرد رو چکار سبب شد که نماز فرد داشته باشید یا نه بله پس وای بر کسانی که پشت پا خانش رو نه؟ بله. بر پشت نشستن خود ذات رو دسته چون دستور ما شاء الله علیه بعد داشت بحث رسول الله است که از کنار الله علیه و علیه این من الانصار فقال يعذبان من كبير اما احد من بول من بول خبص لازمه این از عدم استطار از گل نجاست چی بود؟ حدم قبول اعمالش، نمازش خاطر همین جنس این عمل تأثیرات خارجی داشت که عبادت دیگرش مرده قبول واقع نشه نمازش و طعات دیگرش خاطر همین این وای بر اون شخصی که این وای باش نشسته که سبب شده اون عملی که خدا ازش خواسته مرده قبول واقع نشه اگه اون یکی از ثوابید فقه این فقه رو ولا علمان استدلال کردن استنباده با یک حدیث داریم یک حدیث چقدر چند تا در کلمه سویلون للاعراض من الناس سچوته کنا یشتالن ببین این همه برداشت علما کردن چطور میدن چطور با هم جمع بندی کردن این همه مهمه که باید طلبه ال یاد بگیره مغزش باز میشه فهمش باز میشه یک یکی از انواع عذاب‌های خاصشون یعنی یکی از مثل مثلا کسی که اسبال داشت داشت. عذاب داشته باشه اسبال عذاب مؤصل الكعبه ل اون شخص به اندازه جرمش عذاب می‌بینه پاهاش چون این جنس عملش متعدی نشده روی تاثیر خارجی نداشته زن زن زناکار یا مثلا زنی که مثلا فلان و فلان کار کرده عذابی که میبینه در اون جایی که تأثیرش تأثیرش یا علتش بوده در در جا بیشتر عذاب میبینه مثل کسی که رباخاره یا مال یتیم میخوره یا کسی که دوزی میکنه ها؟ تو جهنم هست ولی خب نوع عذاب ها مختلف فرق میکنه واسه یک شخص نوع ها فرق میکنه ما اینجا این قضیه رو بردیم که این عذابش خاص نیست عذابش عامه این وای و ویل و عذاب خاصه پشت پاش نیست خب تمام بدنش خواهد سوخت در جهنم خب از مسائلی که از در این حدیث گفته شده از عقیده اهل سنت عقیده این است این که عذاب بر روی جسد و روح واقع می شود وقتی که رسول میگن ویلون و پشت ها هست این خوشتفاه پا، پشت خوشتفاهی روش هست یا جسد. جسد جسدی که روش درش هست یعنی هست پس لازمه این حدیث اینی که چی که عذاب روی روش و جسد باقیه بشه و همچنی میشه از این حدیث استنباد کرد که در مسحه رأس آلا خواهیم دهد مسحه سر که در حدیث اومده، عقیب اومده، عقیب را از دستش رو پشت سرش بردن، مقصد از پشت سر، پشت انسان واقع میشه. آخر انسان حالا، که از جهت پشت انسان، بعضی ها عقب وسط سر دونستن. حالا این حدیث مشخص میکنه. عقیب یا عقب میشه چی؟ پشت. فقه بحث این حدیث بر حدیث بله من سر فکر دور عام بود در صحیح مسلم انا اشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال نرسیده بشه حتما نرسیده بشه خب اوورده بخاری بخاری از طریق ابو بکر رو آورده و از طریق عبد الله بن از طریق عائشه بیش نرسیده اما مسلم از طریق بیش نرسیده که اون بخاری مثل دست یی پیدا نکرده یا طریق عائشه قوتش اونچنان نیست که بخاری بیاد خصوصا بخاری که گفتین چرت و چرتش رفته اونچنان قوتی نداره که بخاری بخواد در کتابش بیاره میگه اینکه ما مسلم در مطابعاتش حدیث زیاد میاره حدیث بعدی هم بریم بحث حالا که این حدیث خیلی تولانیم مباحثش خیلی زیاده حالا یک قسمتش رو میدیم تا بخیش رو بزنیم و درس عن أبي ظرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى أحدكم فليجعل الماء في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا وإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن خريه من الماء وفي لظ من توضأ فليتنشق حديث ربرة. خلوا جوه هاي القراءة نازلة ولازم يك نتنبوا وشين. مين يدبوين حديث ربرة هذه السجينة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسوله إن بيش مين كشيء حدا تغنيه تغني شيء نبیه ریره این مدشو نمیدونم مدش بدید صرف حرکات ادغام و بهش بدید این میگن که خاص قرآن من نمان اما حدا رفتم اونجا حدا بین صورت <سطور> نبیه ریره حدا درست اما تغنید حالا بخشت شدار <سطور> گنات فقط بود از بدونید که این حادثه به راحت میشه حس که هست انسان چون کلمه عربی الفاظ عربی ذهن انسان بعضه خطری داره. عناه به غریبه الله عنه. آن الله الله عليه قال ذهن وقتی این میشه في ولكن قبل أنك أن يتحدث عن استنشاق و استنثار يتحدث عن ربي أبو هرره رضي الله عنه عبد الرحمن و عبد الله بن نصر الدوسي فرمودا أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بفتاد آية إلا زلالة و اتصال دارت یا ندارت انانه و عن، معنان عن عن جزء الفاظی که هم احتمال اتصال داره هم احتمال اتصال نداره انانه یا أن معنان و معنان در اصحاب مطلقا قابل قبوله چون مرسل صحابی مطلقاً قابل قبوله مرسل صحابی قابل قبوله لیکن اگر در تبخیه غیر از, از حاب بود این معنان و معنان قبول می شود. قبول می به شرطی که اون راوی تهمت تدلیس نداشته باشه تدلیس تدلیس در لغت به معنای اخفا و پنهان میاد یه چیزی رو تو پنهان بکنی مثلا بلفرد من بگم شیخ فلانی گفته گفتن من شیخ فلانی گفته مثل گفته ای اینه که من بگم شنیدم که شیخ فلانی گفت شیخ فلانی گفت لازمش اتسار یانه لازمهش اینه که من شنیده باشم شاید نوار شنیده باشه شاید از زبان که دیگه شنیده باشه خب یک راوی میاد تدلیس میکنه. چطور تدلیس میکنه؟ من شیخم شیخ فلانیه. من از او شنیدم. لیکن شما اومدید یک خبری به من نکردید که شیخ فلانی گفته. بعد چون من به شما اعتماد دارم. میگم شیخ فلانی گفته در صورتی که من از اون مستقیما نشدیدم با واسطه شنیدم. بخوام این تواهم ایجاد بکنم که اون شیخ خودش گفته لیکن اون شیخ خودش نگفته شیخ گفته لیکن من با واسطه شنیدم وقتی که من واسطه را پنهان بکنم این میشه تدلیف پنهان کرده آنها میاد در بحث مصطلح حدیثم فاهاد من صحابه تدلیفت میکنن؟ خیر در نظر اصحاب چیز تدلیف؟ ندانی که بیان ایک راوی زعیفی داشته باشن بخوام پنهانش بکنم اصحابه دو کلهم عدود صحابه همه عادنه ما زعیف شدن از الاسحاب ندانی کسی بخونم حدشن اگر بلسردم پنهان بکنن برای ما اشکال نداره چون اصحاب همشون عادنه خب قاعده مدتی که به تی معنیش معنی شمایی گفت. یا می کنید الان لفظ ترجمه شد حدیث رو بگم تا بعد یا تفقیق حدیث. باشه ترجمه حدیث میگم. توی که بیم حالان شده لفظ خود حدیث اه... کامرش بگم. ابو حراره میگه که رسول الله فرمودند هرگاهی یکی از شما بزو گرفت پس آبی را در بینیش فرو ببرد سپس آن آب را بیرون بیاورد و کسی که خودش را بعد از غذای حاجت با سنگی پاک کرد وست بکند و هرگاه یکی از شما از خواب بیدار شد پس دستان خیش را قبل از اینکه وارد آب بکند سه بار بشویید. دستان خودش را قبل از اینکه وارد آن آب بکند بشوید زیرا یکی از شما نمیداند که دستش در اون شب کجا خوابیده یا به کجا برخورد کرده در لفظ صحیح مسلم چنین داریم که استنشاق بکند با بینیش از آن آب. در لفظی کسی که بسو گرفت استنشاق بکند خب در لفظ حدیث چنین داریم إذا توضأ أحدكم توضأ فعل الرسم شف عليه فعل ما ذي حلق أبو زوج برب أبو زوج برب ثاموس رأيت ترى إنسان شغوفا جو فعل ماضی دولت ورتی اراده عمل داره اذا توضئ اذا اراد الوضوء هرگاه کتی از شما خواست که وضو هرگاه کتی از شما خواست که وضو بگیرد اصل مهمی در هر دو می حدیث اي اذا اراد الوضوء اذا توضئ اراد الوضوء هر دوی کس شما خواست وضو بگیرد پس آبیرا در بینش قرار بده هر ده هایی که شما خواست بزوی بگیرم قبل از این کلام ما بیام همیجور تفتیقش بکنیم شما در ذهن خودتون الان کتاب خارت هست حدیث اول که داشتیم. داشت حدیث دوم پاکی داشتیم و بزوی گرفتن داشتیم بعد از حدیث سوم داشتیم درست گرفتن نوزیم وجه شاهد در این حدیث کجا؟ قسمت اول استنشا خواستن ساره قسمت دوم پاک شستنه انسان خودشو پاک بشوره پاک بکنه از مجال قسمت سومش قبل از این که ما منو تو آب بکنیم دست منو بشینیم بجه شاهد در این حدید کجاست؟ قسمت از الان هنوز وزو که شروع نشده هنوز وزو شروع نشده چطور اعضای وزو شروع, شروع نشده خب الان بجه شاهد کجاست؟ قسمت سوم چرا قسمت سوم قسمت سوم به دو وجه وجه اول اینکه نجاست آبی که نجست شده یا نجاستی که در دست ما هست اگر در آب کمی بره اون آب نجس میشه ما در تهارت حق نداریم از آب نجست استفاده بکنیم چه در قضای حاجت در قضای حالت در بزرگ روز درسته چون علت این که که از خواب بیدار میشه دستش در آب نبره بخاطره چی؟ بخاطره که شاید اون آب نجست بشه فا اینه لا یادی اینه باتت یادو نمیدون دستش کجا خوابیده یعنی روی کدوم نجاست نشسته دو با من اینکه اولین چیزی که بوزو با شروع میشه چیه؟ شستنه دست. پس هنوز بحثت انشاء نیست با با با با تا بحث بحث استثمار و آبشوب سنم مختاری جو بحث آب و استفاده از آب در خب در این حدیث در این لار چی نم داریم ایذا توضأ احدکم فلیجعل الماء في انته در روایت مسلم چی داشتیم فلیستنشق در روایت فلیستنشق به منخره ای من الماء آب را در بینی فرو ببرد. حالا ما این فرو بردن دو حالت داریم. دو حالت داریم. خود استنشاق در, در لغت عدبی به معنای فرو بردن مکیدن آب و بو در بینی. انسان بوی را بمکید. بکشه والا در بینیش. این بالا در بینی این مکیدن، بالا کشیدن. این بشه میکن استنشاق. یعنی با اون هوا اون آب رو بکشی بالا خب در لفظی داریم استنشاخ بکنه در لفظ اصلی که متفق بین بخاری و مسلم آب در بینیش فرو ببره من آب رو در درستم قرار میدم این آب رو میذارم زیر بینیم این آب میره بالا یا نمیره بالا؟ ره استنشاخ کردم؟ نه چه موقع استنشاخه که من؟ بکشم برام ولی بله هی مسجد آمده خوبیستم هم تو هم ببینی خیلی فواید را فوایدش جای ذخیرشیز ذکرش هر کس که مفید انسان بودن فواید پیش از جمله من هایی که سنجاق خوب میکنن سرما نمیکنن یا کم سرما میکنن سرعتانو نی نمیگیرن رئن نمیگیرن فعلا نیم فوایدی که در خود سنجاق نهفته است که فواید نبرد لیکن اون چیزی که ما مهمه بحث عبادت مهم. که خداوند از ما چی خواسته؟ خواسته که این آب را فرو ببریم خب الان این سیره امره فلید تنشق. پس آب را فرو ببرد امر درست فلیحذر الگی نیو خالف رو نعن امره برحضر باشن که از امر رسول داختر که چی امر خداوند. این هم دلالت حجوبه یا پر طبخ مذہب جمهور مستحب و آیا فرو بردن کافی یا مکیدن هم باید همراهش باشه چی میگید شما همه سنشاخ واجبه همه باید آب اون دونکیم بالا ببریم یک دلیلی بیارید که این کشیدن آب لازم میست. از این دلیل این دلیل بازه. فلیاج الفی انتیه ما. میلال ما. بله شکر دلشت. یک دلیل داریم بر این که این استنشاق همراه مکیدن پنها نیست. میشه بدون مکیدن باشه. دلیل تبالغ في الاستنشاق الا ان تكون چون لازمه استنشاق گفتیم مکیدن اگر ما آب ممکیم بالا ببریم احتمال داره بره تو حلقم بل احتمالش هم. آیا کسی که روزه حالا مبالغه نکرد آب فرو برده استنشاق نکرد آب فرو برد آیا وضوش درسته؟ بزرش درست، بزرش درسته لیکن سنده تر چیه مبالغ درسته که آب و کمیزان بکشه بالا در بینیش با اون هوایی که هست در... حالا گفتیم قود از مکین آب یک سننفی اضافه تره اجزار ما دو بحث داریم اون چیزی که وجود از ما میشه. بیشه و برطرق مرساب احمد چون حکم از فنشاف و همچنین استنسار و مزمده اختراف درشت در مرساب احمد و همچنین ابن منذر و ابن مبارک چنینه که همچین داود ظاهری که مدمده و سنساخ و سنسار واجبه در مذهب جمهور مالکیه و شافعی واجب نیست در مذهب حنفی ها در غصر فرض در فرض ولی در غزو سنته در سنته. خب اگر ما بحث وجود داشته باشیم، حالا این وجود از ما با فرو بردن آب تنها بدون مکیدن ساقط میشه این وجود یا نه بالا این حدیث در این فلیه جلسی اون وجود ساقط میشه لیکن کامل تر کدومه و بالا خلیصین مبالغه بشه پس میشه چی؟ کمال مستحب اون میشه چی؟ کمال واجب انجام ندادی گونقای. ولی احتمال اینه که قالفون عن امره. خود اصل نشاپولی رو ماده واجب نمیشه. بله. خب. نمی‌مونی دست نشقشوت. بعد چه کارش می‌کنیم بعد؟ ثم لين تتفقد العلماءی که گفتن واجب نیست، به چی سنات دادن؟ گفتند که خداوند در قرآن اومده اغزل و وجوه و حکم سورت نظر شدید بینی تونست شاق بکنید هم از مذرور سنشاق بکنید آیا این استدلال بین آیه درسته؟ خیر چرا؟ چون بینی و همچنین دهان جز صورت جز صورت و رسول الله در مباحث متعدد جایی بیفرمایند سلو تمارایتون رو سمید. در جای دیگر میفرمایند خود را عنی مناطق انسان باید عبادتها و تشییعات از رسول الله بگیره رسول الله و انزلنا الیک ذکرا لتبین للناس نرسی من رسول رسول الله بیان بکنند این غسل وجه کسی داره با امر و تأکید بر این مثل. با امر و تأکید بر این که استنشاق کردید آب هم فرو ببری مزمد هم بکنی و بعد چی ثم مليان سهر استنسار بکنی آب با اون هوا از بینی بیرون بیاره پس دفع آب بیرون آوردن آب از بینی میشه چی ایشه استنسار و من استجمر تلیوتر را اینم بازم مباحثی در شد همین مسئله قاتمه بدیم تا اینکه مباحث بعدی بزنیم درست بعدی که زیاد میشه استجمار خود جمر ما رمی جمرات داریم. خود جمر به سنگ ریز گفته میشه خود به سنگ سنگ هایی بهش میگن چی جمر استجمار به پا کردن اون جایی قضای حاجت کردی قبل و دوبار پا کردن قبل و دوبول شرمداخ خود انسان از کش و جلو پا کردن شرمگاه دو شرمداخ بعد از قضای حاجت بهش میگن استجمار یعنی با سنگ پا کردن پا کردن با سنگ با کردن شرمگاه با سنگ بهش میگن چی؟ استجمار خب الان این استجمار داریم من استجمار ها فرمیگو که استجمار کرد ودو بکنه میشه یک بار میشه سه بار میشه پنج بار میشه هفت بار میشه نو بار درسته در مرتب شافعی کم از سه بار درستید این استجمار باید با سه سنگ یا سه بار با سنگ اون محل نجاست رو خواب هر هرچند که با کمتر از سه تا با دو تا هم حاصل بشه چون واجب در نظرم هم شد دو چیزه یکی امکان داشتنه برداشتنه هین نجاست یعنی پاک کردن عین اجازه این مسئله اول و مسئله دومی که در نظر شافعی هست استیفای عدده که عدد سه بار کامل بشه یعنی سه بار باشه درش هم پاکی مهمه هم سه بار یعنی که سه بار که پاک نشود بازم واجبش انجام نداده هم باید پاک بشی و هم باید کم تر از سنگ نباشه این چیزی که در مذهب شافعی ده ما مذهب شافعی رو میگیم الال خصوص تا اینکه فتوال دادهی تو زهنتون بمونه و اگر حالا باسه سنگ حاصل شد دیگه لازم نیست که با سه سنگ انسان بیشتر بکنه بیشتر از سنگ لازم نیست و این حدیث دلالت بر وجوب وقت کردن سه بار یا پنج بار باشه و مذهب شافعی حدیث دیگری تعییدش میکنه. کنه. که رسولان نه می کنه که کمتر از انسان با کمتر از سنگ بکنه؟ استجماع رو بکنه. مذهب حنابل هم مثل شافیه ها با هم فرق نداره. با کمتر از سنگ جایید و اما مذهب مالکی ها و خانفی ها چی که واجب فاکیه حالا با یک سنگ باشه یا دو سنگ باشه پس مذهب خانفی ها و شافی ها چیست؟ کم ترست سنگ جایز نیست خب این خلاصه بحث استجمار آلا هم بازم توی همین استجمار هست مطایلی که هست در همین استجمارمون الان در این حدیث کنیم استجمار استنجار نداشتیم که با آب کسی پاک بکنه آب خب کسی با آب پاک نکرد فقط با سنگ آثاری از اون نجاست موند بعد از مدتی دید, دید که شلوارش روی قسمتیش قطراتی از هدرار یا نجاست روش هست آیا اون نمازهایی که خونده درسته آیا اون فردش رو کرده محاصله میشه روی انجاسته یا اینکه که تحلیفش رو ادا کرده و محاسبه نمیشه اون ستمت ها. محاسبه نمیشه. محاسبه نمیشه چون در حد تحلیفش انجام داده. کسی که این که بزی نه یک سند کاکم می کشن. وثواست. با جان ستا سند کشیدید. پاک باشه. حدیث رو سر چشم بذار. پاک شدیدی. این هم وثواست نباشد. دستور میکشی با خاکم میکشی می‌کشی خصوصا در حدیث داشتی فإنه لا یدرى أین باتت حالا میاد اینطور مله حدیث چون نباید شب دستش که خوابیده لازم استیه خواب نداشتن آب نداشتن با خاک خودشون پاک میکردن خب لازمه واسن پاک کردن چیه قسمت از نجاست نمونه که شب که خوابیده شاد دستش اون نجاسته درکُر بکنی پس تکلیف چیه که خودشو و حد اقل سه سنگ پاک بکنه و اون قسمت رو پاک بکنه اگر بقیه واقعی مود چی مال و چیزی بیرون اومد بده از اون دیگه مکلف نیست این خلاصه این قسمت از حدیث که نمونه قسمت دیگرش به شرناب هفته یه انده سبحانه کنه ابحامدک سبحانه ابحامدک استخبار ازدخشنان استخبار ازدخشنان استخبار ازدخشنان استخبار ازدخشنان